رخداد نادرستی نظری های نجادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا بارز سلام و در بهترام خدمت شما اندگان گرامی و همراهان صدای امید از سایت اینترنتی www.صداییومید.com شنوندگان گرامی تا قسمت 31 برنامه برابری در خدمت شما بودیم الان در قسمت 32 در خدمت شما هستیم و رسیدیم به اجداد انسانهای اولیهی که در واقع ما از نسل اونها هستیم، اجداد ما هستن اونها که مشخصا در آفریقا به وجود اومدن و قاره آفریقا مهد در واقع انسانهای امروزی است گرچه تمامی انسانها و سرده انسانها هم در واقع نسلشون از قاره آفریقا می باشد. در قسمت 28 و 29 هم یادم هستش که این دو تا نظریه رو بنده مطرح کردم که نظریه تک مبدعی هست که اساسا از یک مبدأ هست انسان های امروزی انسان عاقل امروزی انسانی که دارای فرهنگ سازی هست و دارای تمدن سازی فقط از یک مبدأ وجود داره حتی اون فرمایشی هم که جناب آقای ایران مری گرام برنامه گذشته فرمودن که جنس در واقع مادر و از جنس پدر از یک گروه اون هم حتی بزرگان علم جنتیک میگه که یه نفری بوده حالا نمیگن که دقیقا مثلا در مورد میتوکندوریا یا اون مادر اولیه یک شخصی است که احتمالا بین 140 تا هزار سال پیش تو آفریقا بوده یعنی یک نفر قطعا درست حالا یک گروه جمعیتی یک گروه ژنتیکی بودن ولی این گروه جنتیکی قطعا به یک نفر از حالت هرم انسان به یک نفر میرسه و در مورد پدر اولیه هم قطعا اون چیزی که تحقیقات ژنتیکی نشون میده بین 120 تا 140 هزار نفر به یک مرد میرسه درسته که یک گروه ژنتیکی واي ای در واقع ردیابی شده و رسیده به اینجا و قطعا گفته میشه که از یک گروه جمعیتی و از یک گروه ژنتیکی هستش که این راسته ما انسان ها سرده ما انسان های فعلی از اونها نشأت گرفته ولی این تقریبا از لحاظ علم جنتیک یه منطقی هم هستش احتمال این هم هست و, و قطع یقینی هم میشه گفت که وجود داره که تو این 20,000 سال بین 140 تا هزار سال پیش یک مردی بوده که در واقع نیای اولیهی ما انسان ها احتمالا بود و انسان اولیهی که میشه گفت که اون جنی که ما داریم از اون بوده اون دلایلی که در واقع حالا چرا فاصله بین این ژن در واقع مذکر و ژن مؤنث ما یه چیزی بین 20 تا 30 هزار سال هست اونم که برنامه‌ای پیش این ما ارث کردیم حالا به این نمی نمی‌پردازیم می‌بینیم سراغ همین نظری تک مبدئی که ارث کردیم نظریه تک, مبدعی که عرض کردن نظریه تک مبدعی هستش که از لحاظ منطق ژنتیکی دارای پایه‌های علمی و در واقع پایه‌های علمی درستی است و متدولوژی علم ژنتیک در اون رعایت شده نظریه چند مبدئی باز هم عرض ارث که درست حالا طرفداران خیلی کمی داره استدلالهای عجیب و غریبی هم برای خودشون دارن و میگن که چون در نقاط جغرافیایی خاصی اینها در واقع اون افرادی که اجداد انسانهای امروز و هموساپیانهای امروزی هستند حضور داشتن به صورت منطقی تو یک زمان خاصی اینها در واقع تکامل مشابه داشتن و بعد اومدن با همدیگه در واقع آمیزش کردن و انسان امروزی بودم که البته عرض میکنم. مشابه رو نمیتونن بله. توضیح بله. بدن رو بله مشابه بله مشابه واقعا نمیشه توضیح مشابه داشتن رو چه واقعا بله. رو چه حسابی بله. داشتن و قطعا به یک باز هم حتی اونها هم به یه ژن مشترک میتونن برسن دیگه اونام به یه دقیقا و همون ژن مشترک همون مبدا اولی هم میتونن برسن حالا نظریه تک مبدئی اینو ما همینجا در واقع به عنوان نظریه ژنتیکی معتبر و علمی میپذیریم در این فاصله حالا فاصله بله عرض کردم اون ژن مؤنث 170 تا 160 هزار سال پیش و ژن مذکر 140 تا 120 هزار سال پیش تکامل پیدا کرده یعنی به طور قطع حالا قطع نه ما مثل اماره میگیم مثل زنی میگیم که تا حدود 110 هزار سال پیش یه جمعیتی از انسانهای اولیه که اجداد ما هستند در شرق آفریقا زندگی می‌کردند اینها ها یه سری گروه های جمعیتی خاصی بودند. من ارجام میدم دوستان رو به کتاب فرهنگ انسانشناسی که مجموعه مقالاتی از جامعه شناسان، انسانشناسان، زیستشناسان و اندیشمندان ژنتیک در دانشگاه کمبریج و آکسفورد هستن بوده 25 تا مقاله هستش که تجمعه آقای محسن سلاسی هستش و ادشات علم کنم ترجمه کرده دو تا مقاله خیلی خوب داره در مورد نوع زندگی این انسانهای نخستینی که در شرق آفریقا زندگی می برآورد براورد و انسانشناسان بر اینه که این انسانهای نخستین در قالب 17 تا قبیله در شرق آفریقا زندگی می و و احتمالا دو تا قبیله به صورت رشدهی در شرق آفریقا با همدیگه حتی رابطه داشتند. این تو اون کتاب بله بله آ دکتر جالب نرامسین یک گزارشی میده میگه از درون فلات ایران شاه عکد بوده دیگه بله دقیقا میگه از درون فلات ایران 17 قبیله که همیشه با هم متحد میشن و به من حمله میکنن در زمین عکل شاید میام این یه ای همچالاتیه که آوردن به, به این نام در واقع بوده اینها روابط مشخص خاصی دارن اولا چیزی به عنوان نهاد خانواده در داخل این انسانها به وجود نیومده روابط آمیزشی شبیه روابط بقیه در واقع موجودات هست یعنی اون حالتی که آمیزشی که بین جنس و ماده در بقیه, در بقیه موجودات صورت میگیره تا حدودی تو این انسان ها وجود داره روز تو شامپانزا و گوریل ها یک گروه داریم نر قالب دارن و برای روابط خواست خودشون ولی پروفسور جیسون جیمز بر اساس یک سری یافته های در واقع فسیلی در شرق آفریقا معتقده که اینها تا حدودی یک حالت حیای خاصی تو این جنس داشت شکل می گرفت. چطور؟ در سالها و در هزارهای نزدیک به شروع به مهاجرت یک نوع آمیزش خاصی بین اینها یک نوع فرهنگ جنسی و فرهنگ سکسی خاصی بین اینها شکل میگیری که جالبه که آنتونی گیدنس هم در کتاب جامعه شناسی جامعه شناسی معروفش که کتاب درسی جامعه شناسی است در مقدمه یه بخشی است به اسم فرهنگ و خانواده که ریشه خانواده های اولیه رو در این تجمعات اولیه انسانی میبینه میگه که بین اینها درست حالت خب لباس که به وجود نیومده بود هنوز یک سری پوشش های خاصی داشتن و فقط بخشی از بدن خودشون رو حالا با برگ یا برگ که با پوسته برخی از حیوانات میپوشندن تا حدودی. یعنی اولین فرهنگ لباس اینها به وجود اومده بود. و نوع آمیزش جنسی که در بین اینها و فرهنگ آمیزش جنسی که در بین اینها به وجود اومده بود آرام آرام و در طی یک چیزی حدود 20 هزار سال تبدیل میشه به آمیزش جنسی در یک جای مخفی. و عملا وقتی که مثلا یک جنس ماده میخواست یه جنس نر رو در واقع دعوت بکنه برای آمزش جنسی به یک جای خلوت میبرد و در حضور جمع این کار رو انجام نمیداد و سعی, سعی می‌کرد یک جای خلوت گیر بیاره و این کار رو انجام بده ولی هنوز هم اون خانواده اون حالت کلاسیکی که بعدها به وجود اومد هنوز شکل نگرفته بود. پدر و مادر به اون شکلی که وجود داشت شکل نگرفته بود و معمولا، کودکی که به دنیا میومد وابسته به مادر بود یعنی مثلا چون پدرم مشخص کنه وابسته به مادر بود و معمولا برآورده در واقع زیست شناسان و همیشه انسان شناسان مطالعات انسان شناسان اینده که کودک معمولا تا 3 تا 4 سالگی با مادر بود و معمولا مادر اون رو ول میکرد و میرفت سراغ در واقع جای بله تو قبیله بزرگ میشد و یه اصلا نه قبیله بعدها به وجود قبیله ارزش اون موقع که این ترجمه تازه شکل می قبایل در طول 5 هزار و و۱هزار سال به وجود اومد یعنی ده هزار سال قبل از شروع مهاجرت انسانی تازه قبایل به وجود اومده و هم دیگر رو شناخته بودن و کنار هم به در واقع تعامل داشتن حالا اون تعامل ها اکثر تعامل های زنانه بود جالبه ایید و بیشتر زنها اولین بزرگان قبایل بودن یه جنس معص بود مذکر ها خیلی در واقع توی به وجود آمدن تجمعات انسانی نقشی نداشتند و بیشتر معص ها بودن که در واقع می اومدن. تجمعات مختلف انسانی رو به وجود می آوردن نیا برای خودشون نیا باونج... نه به اون شکلی که ما بیگیم شجر نامه و خانواده و اونیا نه اه... اونایی که تقریبا همجنس هم بودن همسان خح هم, سنخ هم بودن و در واقع خصوصیات مشترکی با هم دیگه داشتن می کنار هم جمع میشدن لذا تجمعات اولیه لزوما خاصیت ژنتیکی خاصی نداشت یعنی مثلا خون خاصی نبوده که کنار هم جمع شده بودند چون قبایلی که ما میشناسیم به عنوان های قبیلی خب دارای یک نوع فرهنگی هست مثلا فرهنگ قبایلی عرب رو شما گفتید فرنگیس فرنگ سار خون مشترک دارند فلان اینا ولی اون موقع شکلگیری جواب اولیه و شکلی گیری جمعیت اولیه و قبیله شاید حالا بهتر اون در واقع تعبیری که آقای جیسون به کار میبره یه تعبیری هست حالت قریزی و اتفاقی اتفاقی چند تا مثلا جنس معنیس هم دیگر رو میدینه و در کنار هم یک جمعی رو به وجود می آوردن ها در داخل قارها و یا در جاهای مختلف در داخل جنگلها که برای که یک زندگی کنار هم داشته باشن و تعامل داشته باشن و بیشتر تعامل هاشون هم چی بود جمعآوری خوراک بود جمعاوری خوراک چون مثلا وقتی که جنس معنه است در واقع برای که برای جفت که نیازه برای جفت خودش در واقع خوراک جمعید و اتفاقا این آقای جایس هم میگه که اینها آشبرزه های اولیه انسان های اولیه هستن که در واقع برای جنس جنسی که میخوان با اون آمیزش داشته باشه چون فقط اون موقع ازدواج و این که نبود تشکیل خانواده که نبود فقط و فقط دیدار دوتون جنس, جنس در واقع مخالف جنس محلنس و مزکر برای به وجود آوردن یک رابطه جنسی بود و کامل رابطه جنسی مکانیکی احالت مکانیکی داشت و به اضافه تولید مثل بود تولید مثل هایی که انجام مثلا آقای جیسون میگه که هر جنس مؤنثی به طور متوسط تو عمر خود یه چیزی که حدود 11 الی 12 تا کودک بود به دنیا می آورد که معمولا 80 درصد اینها از بین می‌رفتن بخیه‌هاشون به خاطر بیماری بخیه‌هاشون به خاطر اینکه از حدود 3 تا 4 سالگی از طرف مادر در واقع ول شدن می‌رفتن حالا بقیه خوراک بقیه حیوانات می شدن یا از بین میرفتن به خاطر مسائل طبیعی و چیزای دیگه ولی وجه دیگر زندگی که اینها دارن چون از انسانهای گذشته یک سری ابزارهایی رو یاد گرفته بودن مثل ابزارهای شکار مثل آتش حالا آتش حالا مهار کردن آتش حالا بعدها انسان به وجود میاره ولی آتش رو از آتش استفاده میکردن مثلا از فوسیلهایی که از شرق آفریقا در واقع پیدا شده ما یه سری مدارکی داریم که برخی از حیوانات رو میگرفتن و به شکل خیلی هرفهی کباب میکردن کباب میکردن در واقع میخوردن مثلا ماهی هایی که میگرفتند یا حیوانات دیگری که میگرفتن برخی حتی پرندگان حتی در واقع اسنادی هستش که اونا رو پیدا, پیدا میکردن و در واقع میخوردن و زندگی عمومه یک زندگی بر اساس تغذیه بود یکی تغذیه بود و یکی هم قرایز بیشتر حالا جنسی که تو بقیه حیوانات و بقیه موجودات دیگر هم ما در وسولاق داریم این نوع زندگی شکاری حالتی یک زندگی به قول کارل کمون کومون ای بود که ایستا بود یعنی یه یه ایستایی خاصی توی این زندگی برخوردار بود خب حالا چه اتفاقی میفته که اینها میان تصمیم میگیرن که در واقع محل زندگی خودشون رو تغییر بدن چه اتفاقی میفته که اینها اون بهشتی که برای خودشون ساخته بودن تو جنگل توی اون قسمتی که در شرق آفریقا بوده تصمیم میگیرن که به یه جای دیگه مهاجرت بکنند؟ که امده دلایلی که انسان شناسان و باستان شناسان میارن بیشتر دلایل برای تغذیه بوده چون دلایل برای چیزهایی که ما داریم در برد مسائل جنسی هیلهایی که داشتن خب اینا که نبوده در دست دسترسشون بوده جنس مخالف لذا اون دلیلی که باعث میشه که اینها تصمیم بگیرن برای انتقال دست جمعی خودشون به جاهای دیگه نیاز به تغذیه بوده نیاز به غذا بوده حالا این که نظری دیگه هم بله خب این خوش. که خوش. کردن این رو اما فشار جمعیتی رو هم اینا مطرح کردن حساب انسان شناسا گفتن چون هرچه تکامل داشت پیش میرفت و این حجم مغز بیشتر میشد. بله میانگین سن توی این گروهای جمعیتی داشت بالا می‌رفت داشت بالا می‌رفت بله حفاظت بیشتری می‌تونستن از خودشون بکنن و جمعیت ها گروه ها بزرگتر میشد این فشار جمعیتی داشت اینا رو هل می‌داد به سمت دهانه شرقی آفریقا دهانه شرقی لحظه خواهش میکن. بله اتفاقا آقای جیسون ها اونجا میگه میگه که در طول یک چیزی حدود هزار سالی که این انسان‌ها اونجا زندگی می‌کردند و آب هوای خیلی خوبی هم داشت و زنوع زندگیشون حالا درسته است بود ولی خب مغزشون در حال گسترش بود در حال حجم مغزشون در حال افزایش بود و که... به که بله. سنگوارها به روشنی نشون میده که این انسانهای اولیه آرام آرام خودشون رو تطبیق داده بودن با زندگی تو اون منطقه و زد... به ب... خاطر زندگی تو اون منطقه یه سری فنهایی رو یاد گرفته بودن یه سری در واقع کارورزی هایی داشتن انسانهای کارورزی بودن و باعث شده بودن که در مقابل عاثر طبیعی در مقابل خطر که طبیعت اونها رو داشت حال خطر های دیگری که وجود داشت خطر هایی دیگری که از جانب طبیعت از جان عمل طبیعی از جانب حیوانات دیگه بود خودشون رو حفظ می و تغضیه و رشد تغزییه گم که, که داشتن باعث بود که متوسط ابمرشون اومتتی بره بالا تولید مثل اومتتی بیشتر بشه جمعیت اوتی بیشتر بشه. ان ف جمع اتفقا همین ان فجار جمعیتی حالا جا جمعیت که اسمشون بشه گفت فشار ازدیاد جمعیت هم مزیده بر علت شد که نیاز به قضا بیشتر بشه چون اون بشر اون کشاورزیم کشاوردی که به وجود چیزای طبیعی استفاده میکن و این مواهب طبیعی خب یک ظرفیتی داشت و نوع شکار و نوع برداشتی که انسان اولیه داشت خب به هیله که نبود میرفت و از طبیعت رو به حالت حالا نبیگه وحشیوار طبیعت رو می آورد چپاول کرد و غذا می خورد برای که شکم خودش رو سیر بکنه لذا مصرف بهینه طبیعت هم که نبود اونا رو طبیعت فشار می آوردن و با حالت وحشیگری به طبیعت فشار می آوردن و طبیعت هم نمیتونست طبیعت اونجا هم نمیتونست خیلی بر اساس منطق اونها بر غذا در اختیار اونها قرار بده لذا این فشار غذایی باعث میشه که این جمعیت های اولی در شرق آفریقا تصمیم بگیرن که بیان در واقع تصمیم دست جمعی در تون طی چندین هزار سال تصمیم دست جمعی بگیرن که مهاجرت کنند به سمت شرق چون اولین خروج هم نبوده نه مشخصه با خاطر دلیل خیلی طبیعی این گسترش رو پیدا من کرده بودن ما منظورم اینجا این انسان‌های خرد این های, های و اجداد ما برد. اجداد ما انسان‌هایی که توش دارین تو این کره زمین داریم زندگی می‌کنیم هستش اویا دیگه که دیگه نهستشون مقایسه شده و دیگه اثری از اونها تا اونجا که در واقع بشر تو کره زمین گشته نیسته شاید باشه و در واقع ما خبر نداریم شاید حتی تو خودی کشور ایران خود ما بعضی روساس هستن که اصلا کسی خبر نداره حالا در داخل پانداز بگم اصلا موضوعی که اطلاعات کازمین زنجان ساخت است اصلا بعضی روسان هست کشف شدن اصلا نه کسی نمیدونستش نروسای وجود داشته هستن. اصلا به یه زندگی عجیب و بیام داشتن حالا بگذاریم بله قسمت 32 برنامه اینجا وقتش به پایان میرسه شنوندگان گرامی خیلی متشکرم از حضورتون و توجهتون به این برنامه ما تا آغاز قسمت 33 برنامه شما شنوندگان گرامی رو به خداوند متعال بسنم خدا یار و نگهدارتون